معلم و نفسهی احق و به تبجیل و تعظیم من مؤدب غیرهی یا معلم غیرهی فرمود کسی که مؤدب خودش از خودش دارد عدد می کند ارزشش پیش خدا بهتر از کسی که برای دیگران در درست می گه. چون او یه سلسله مفاهی نیست داره منتقل میکنه و اما کسی که اما اگر کسی خودش زنده باشد میتواند تواند دیگر رهیه کند اما اگر کسی خودش مرده باشد، نیتی سو باشد، مثلا کسی که لم یعرف امام زمانی ما می‌توند جاهلیه. اگر مرگش مرگ جاهلیت است، برای آن است که چون کماته ایشونه تموتون، نه آن است که زندگی و زندگی هیچ بس، مرگش مرگ جاهلیت است. اگر کسی من مات و لم یعرف امام زمانهی اجل الله، و هر افسی که بود. ماتمیت جاهلیه اگر مرگش مرگ جاهلیت است معلوم میشد حیات حیاتی و حیات جاهلی بود او زندگی جاهلی داشت چون کما تا ایشونه تموتون. به همون, دا همون اندازه که البته به همون اندازه که آگاهی دارد به همون اندازه هم حیات دارد و همون اندازه که حیات دارد احیا کنند و ایلها اگر به همون اندازه آگاهی داشته باشد و عمل نداشته باشد اثری ندارد، ایهان کند چون موعظه اذا خرجت لسان لنگت لن يتجاوز الاظامدی از گوش بیرون نمی رود و اگر از گوش و به دل راه پیدا نکند که ایها نمیشود شما اگر در کنار این دودخانه تمام شاخه های این درخت خم بکنید به این صبح تا غروبم در این دودخانه شاخه‌هاش و فروغه بهید هرگز سبز نمی شود باید یه مقدار زحمت کشید از دودخونه گرفت به پای نهاده و لا سر درخت دادم خم بکند این مثل کسی که آدم در مجلس بشیند و با چشم و گوش گوش بدهد و اگر حرف در جانش فرو نرفت مثل همون شاقیسی که نراو حوض یا استقر هست که کنار دریاس انسان سرش خم میکنه در آب صبح تا او هرگز میوله نمیده او هرچی زودتر میخواست اگر این که نباشد که احیان خواهد شد بنابراین حضرت در اونجا فرمود معدب و ای کسی که به تعدیل خیشتن خیش پرداخت و به فکر این بود که من یه موجود عبدیم یه موجود ابدی که خود را ارزان نمیفروشه و به این فکر بود که حضرت فرمود شما هر روز در دادوسته اگر خودتون را به غیر بهش فروختی ضرر کردید لیسه لانفسکم سمنون الا الجنن علا فلا طبعوها الا بها شما مقدار بهشت میارزید پویشون رو به غیر بهش اگر فروختی ضرر کردی لا اقل اون حد اقل اون جناتون تجریم تحت آنها. اگر کسی اون همت را داشت که ود خلیفی عبادی ود خلی جنتی این زهی ساده اون همت رو نداشت لا اقل جناتون تجریم تحت الانهار باشه اگر اون اولی شد دومی هم حاصل است اگر دومی شد البته اولی حاصل می برای